تحلیل سوات. گفتم برای بله تحلیل سوات خب شما چهار تا نقطه ضعف قوت، فرصت و تهدید حدوداً چهار تا، حالا ببین هدف ما چیه؟ هدف ما اینه که تعداد نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید جامع و مانع باشه متوجه هستی؟ تعداد کم ولی اون مهمه، اون بلدا ببینید توی همین استراتژی شیت که جلسه گذاشتم من خدمتتون ارائه کردم شیت اولش تحلیل محیط داخلیه درسته تحلیل محیط داخلی برای اینکه شما مشخص کنید استادیو ها رو نقاط قوت و نقاط ضعف خب به عنوان نمونه ما نقاط قوت در یک سازمان مشخص کردیم دانش سازمانی یه نقطه قوت خوب. برند سازمان یه نقطه قوت وفاداری پرسنل یه نقطه قوت سیستم فروش و بازاریابی یه سازمان یه نقطه قوت یه داستان اینجا وجود داره SWOT یا سوات یه سختی داره اگه آفی سختی چیه؟ نه نمردهی سخت نیست انتخاب هم همین نقاط و قوت و ضعف و فرصت و تحدیده که سخته و به نوعی آره خب کی باید این کار انجام ده؟ من جلس گذاشتم خدمتون گفتم اون باید شناسایی ها. ها. ها توسط یک کسی باید انجام بشه که واقعا سازمان تسلط داره میدونی شناخت, شناخت, شناخت, شناخت کامل و کافی نسبت به سازمان داره شما باید بیشتر بیشتر؟ مدیر بشید حالا میتونه مدیر عامل سازمان باشه مدیر هیئت مدیره باشه حتی میتونه مدیر بازاریابی باشه مدیر تولید باشه ولی هر کی که هست باید سازمان رو خیلی خوب بشناسه زینفان سازمان خیلی خوب بشناسه صنعت رو خیلی خوب بشناسه صنعتی که داره تو اون صنعت دقیقا تولید کالا و خدمات میکنه الان آه... دیدین <تصفح> کیا میشناسن سازمان رو نگه آب نگه ابدارچیه ابدارچیه من خساندارش وای تازه دیرم شده خیلی سخته و واقعیت امرش سواد یکی از سخت ترین متدهاست برای تحلیل سازمان متد شواته ها ولی اینی که شما بخواید اون نقاط و قوت و ضعف و فرصت تحلیل اکسترکت کنی بکشی بیرون اون کلیدیا رو بکشی بیرون سخته به خاطر همینه که ما برای تدوین سند استراتژیک مثلا در رابطه با استراتژی های کلان شرکتی میگیم چهار مدل در حقیقت همزمان میلیم ج که سواد یکیشه و این نقطه ضعف صوتی ولی مدل های دیگه این نقطه ضعف نداره که حالا با هم بحث میکنیم مدل های دیگه این نقطه ضعف ندارن دقت بکنید این شنایت قوت وقتی که شما و نقاط ضعف این سازمان نقدینگی یه نقطه ضعفش مثلا سازمان یک سازمان یه سازمان سیستم مکانیک سیستم مکانیک یعنی چی؟ فرزیب نه من توی مدیریت بهتون توضیح دادم سیستم مکانیک سیستم ارگانیک آره وقتی <مش> <مستقش> میگیم ساختار یک سازمان اتفر! مکانیکه یعنی بیوروکراسی تو سازمان خیلی بالاست البته <تصفح> <تصفح> از جهت اطلاع میگم این نقاط قوت و ضعف سازمان خود منه این نقاط قوت و ضعف سازمان خود منه ببین ما نقاط قوتمون دانش سازمانی داریم برند داریم وفاداری پرسنل سیستم فروش و بازاریم نقاط ضعفمون نقدینگی مشکل داره یعنی یکی از دقدرهای من مدیران از صبح تا شب بحث نقده واقعا من تو این قضیه پدرم در اومده خب؟ شماره دو سیستم مکانیک بیوروکراسی وحشتناک تو سازمان ما بالاست وحشتناک بالاست ما فردا گدرینگ آخر سالمونه همیشه قبل از این مدیرانی گدرینگی میذاره مدیران گروه و ده این روز داشتم با مدیر و بازاری همینو فردا ده نفر دعوته خب و همه این ده نفر به شکلی به روش تو سیستم یه دستی دارن یه تصمیمی میگیرن یعنی شما در نظر بگیر یه شرکت ده نفر بخوان روش تصمیم گیرنده باشن و تاثیر گذار باشن چقدر بله و اینو ما میگیرد سلسله مرات فوقلا بالاست مثلا من مدیر عامل یه نقطه نظری دارم هیئت یه نقطه نظر دیگه ای داره، سخانداری نقطه نظر دیگه داره و این کار فوق فوق‌الاده سخت میکنه می‌کنه. فوق‌الاده کار سخت میکنه مثلا الان دی جلسه هیئت مدیره بود، اینا گفتن آقا پروژه‌ای که پیش پرداخت مشتری نداده یا تأخیر تو پیش پرداخت داره، پروژه رو خرد کنید، نگه دارید. خب من با این متد مخالفم. من میگم ما باید بلند مدت نگاه کنیم. چهار سال آینده، 5 سال آینده رو نگاه کنیم. سهامدار اینجا بعد دست قیمش کنه پولی تزریق بکنه پروژه بره جلو بعد این پول برمیگرده ببین همچین همین های بعضی ما تو سازمانمون هست که من اسم اینو میذارم سیستم مکانیک متوجه هستی سیستم مکانیک سیستم سهامداری ما اصلا کلا داستان داره خود سیستم سهامداری ما یه نقطه ضعف برای سازمانمون سهامداران ما میگن پول در بیار و خرج کن و حق سهام به موقع بده می‌دونم چی دارم میگم؟ دست‌رتی که در شرایطی که موجود که نقدینگی فوق‌العاده سخته خب این خیلی کارو برای یک مدیر سخت میکنه <تصفح> که سهامدار بگه آقا مدیر برو پول در بیار، خرج کن حق سهام منو به موقع بده. یعنی من ماهانه باید حق سهامدارانو بدم. مثلا فرض کن اگه پارسان ما سود خالص شرکتمون در تو 4 میلیارد تومان بود. سود خالص تقسیم بر 12 کن چقدر میشه؟ حدود ماهی 4 میلیارد تقسیم بر 12 چقدر میشه؟ شب بوده 600 ملیون ها بوده 600 درست ها بروز کنه نه 200 ملیون 600 عید... 300 خورده میلیون تومان. توم ها من ماهانه حد به سمام دارم پرداخت بکنم یک پول سمام دارم میدن ماهانه حالا علاوه بر حقوقی که باید پرداخت بشه حزینه های جاری که شرکت داره فازو تا ما مشکلات نقدینگی داریم ببین چه شکوائیه سال مالی میدم. خب من عرض کردم این چهار میلیارد تومان ما رو سال گذشته است ولی مثلا سال گذشته که ما سودمون 4 میلیارد تومان حالا سمدار میگه اوکی ما به من پرداخت کن و یک ماه هم که پرداخت ما نکرد اینترست ریتش رو میدینه یعنی مثلا میگم توی یه ماه دیر کرد داشتی مثلا حق شما من 200 میلیون تومانه مثال دارم میذارم یه ما در کار داشتیم مثلاً اینترسیتی بانکی رو حساب میکردم مثلا میگن سی میلیون چهل میلیون میذافتار باد بدهی برای ماه بعد یه همچین مشکلاتی رو ما داریم ولی بهش سیستم سهام داری خب که این نقطه ضعف تو سازمان ما یه نقطه ضعف خیلی بوده خب و یه نقطه ضعف دیگه که داریم بحث تشییع <تصح> نه واقعا من هدکت دارم یعنی من من آدم بسیار سمجی هستم بسیار سمج خب. آره خیلی من سمجم یعنی بیچاره میکنم حالا چه پایین دستی رو چه بالا دستی رو ولی هر مدیر عامله دیگه جای من بود میبورید یعنی اینو من گفتم تخصص خاصی هم ندارم ولی سمج بودن همه به نوعی مهارت من باشه فوق العاده و اینه که در حقیقت کاری خرد سخت می‌کردم ما یه قراردادی رو با مناطق نفتخیز خیز جنوب از یک سال پیش پیگیرش بودیم خرد شده بود به مبلغ 10 میلیارد تومان افراد و نفرات مختلفی پیمیر قرارداد رو به امضا کردن یعنی یکی از مدیران ارشد مناطق نفت خیز جنوب شرکت مناطق نفت خیز جنوب بزرگترین شرکت نفتی در ایران خوب 80 درصد نفت و گاز کشور رو مناطق نفت خیز جنوب داره تامین میکنه و عملاً به وزارت نفت یعنی مناطق نفت خیز جنوب چون می‌دونه که اکثر از های نفتی ما تو جنوب دیگه و یه مدیر عرشتال من اسمش هم من سمتش هم نیبرم این کلیدی ترین نفر، اینو خوابونده بود، قراردادو خوابونده، رو میزش بود امضا که، یک سال خب؟ و انواب و اقسام نفرات مختلف تو سیستما پیگیر قرارداد بودن از حیط مدیره، سهاندارهای روتیتین شد دیگه یه مخته مدیر بازاریابی، یه مخته یکی از سهامداران روعتتون کنم حتی رسید به جایی که اینا دنبال خریدن نفر افتادن تو وزارت نفت که بره فشار بیاره بازم بازم اندازه نگرفتن تو وزارت اطلاعات ما بعضی چیز داریم یه نفوسهایی داریم بازم فشارهایی که آوردی به بنظیر نیست تا اینکه من هفته گذشته گفتم آقا فایل رو بدید دست من با رفتم مناطق نفت جنوب نشستم جلوی دفترش من چهار روز نشستم جلوی دفترش من چهار روز اهواز بودم چهار روز نشستم توی دفترش حالا بمانم چه اتفاقاتی افتاد تا برای چهار روز من امضا رو از این گرفتم برگشتم تهران خب ببینید آره من خیلی سمهجام ولی خب آدمو مضیعت میشه دیگه بالاخره انرژی بد بزاری خیلی بد انرژی می‌ذاری سیستم سامانداری ما مشکل داره بعد نو... یه نقطه ضعف خیلی اساسی که تو سازمان ما هست تجهیزات تجهیزات ما ضعف داره و در نتیجه ما مجبوریم کارهایی که میگیریم و واگذار بکنیم به تعمیل کنندگان که برامون انجام بدن حدود 150 تا 200 تعمیل کننده ما داریم انواع و اخسام خب شما حالا در نظر تو بازار ایران با 150 تا تعمیل کننده می‌خوای کار کنید چه دقدر به این داری؟ چه داستان‌هایی داری؟ بمانه اصلا نمیشه اینو نبشت یعنی یک لابستوریه برای خودش، داستان برای خودش. این یه نقطه ضعف اساسیه که در حال حاضر ما تو سازمانمون داریم اوکی؟ پس این نقاط و قوت خدمت رو گفتم، نقاط ظرفت خدمت رو گفتم بریم سراغ محیط خارجیمون تو محیط خارجی. تو محیط بیرونیمون خب فرصت ها رو ما لیست کردیم فرصت هایی که الان پیش پای ما هست که تحریم ما برای ما فرصته. تحریم برای ما فرصت ها. در حال حاضر حجم رقابت برای ما فرصته یعنی رقابت الان تو سازمان ما، تو صنعت ما خیلی فشورده نیست کالا و خدمات جایگزین، این همش برمیگرم اون یازده آمل کالا و خدمات جایگزین برای ما یک فرصت محسوب میشه چیه کالا و خدمات جایگزی؟ یعنی کسی بکنید از روی کار داری کار داری داشت شبیه شریک ما رو تولید کنه و نیاز مشتری رو مرتفع بکنه نمیدونم نه اصلا نوع محصول ما به گونه ایه که شباهت نیست مثلا تو شین فروشی ما کالا و خدمات <تصفح> گردشگری داریم ولی منی که الان دارم توربین بخار تولید می کنم این دیگه کالای جایگزین نداره دیگه یه محصول استاندارد جهانیه پیشرفته ترین کشورها هم تو دنیا هم اصلا محصول جایگزینی برای امینه خب موانع ورود به بازار تو صنعت ما بالاست اینه هر شرکتی به راحتی نمیتونه بیاد وارد حوزه رقابت با ما بشه خب؟ بودن شرکت که مثلا دلائل مختلف داره که بحث زیرساختی تجهیزاته و یکی, مهم، یکی از مهمترین موارد تو صنعت نفت که میخوای کار کنین چون مافیایی و فوق فوقلاد قوی تو سرعت نفت داشته بشین بودن رقبهایی که اومدن حالا اینی که دارم میگم که زب نمیکنه کنیم سه داره که خسته گفتم میگم بچه های خود باید ما صاحب خیلاص همینکه رستم بچه که خودشون پرزنت کردن متوجه این در با محصولی که ما داریم تولید میکنیم رقیب جدید شرکت جدید. از تو نطفه خفه کردیم یعنی اصلا یالو محو شد میدونی چی بگم آره این مبانه ورود به بازاره فوق العاده بالاست حالا جدا از این سرمایه گذاری خیلی شدیدی میخواد دانش خیلی زیادی میخواد و و و خیلی چیزهایی دیگه همین که شما بخواید دور تو وایت لیست وزارت نفت بگی گنجی که اصلا وزرادن بگه مثلا این شرکت قوا داره میخوام مثلا بش کار کنه چه کاری بهش بده چه نده خودش ریسک خیلی طولانی داره ما چهار تا فرصت رساند کردیم و تهدیداتی که داریم ما کلا دو تا تهدید معروف معروف بولد و مهم بین اون یازده عامل داریم مشتریان تنمی کنند مشتریان ما دولتی در نتیجه قدرچان و زنیشون دولتی قدرچان و زنیش بالاست من از یه مشتری پول میخواستم چهار میلیارد تومن خو خب باز دوباره مدیر مالش لحش کرد با ما حالا پیش میاد دیگه خب خیلی هم پیش آره، من نمیدن آره تو برو بگو آقا من اصلا تو میتونی اونجا داد بزنی میتونی نفر بفرستی مثلا پولش کنی نمیشه مرکز دولتیه میگیرن از نظر زیادنان. اطلاعاتی اصلا اطلاعاتت دنبالت بحث امنیتی اصلا داره یعنی اگه مشتری انا مشتری که من درم میگم مثلا مجمعای نفتی گازی پتروشیمی که اینا دولتی ان دیگه هی یه, یه نفر اونجا با تو چپ کنه نخواد پولتو بده پولم داشته باشن پول تو بدن اصلا داستان خواهید داشت. حالا اینا الان پول ندارن بعضا ما میبینیم خیلی از مشتریان ما اصلا مشکل نقدینگی داره حالا ببین تو چه جوری پول از اینا بگیریم با چه روشی با چه متودی خب بعضا ما برای گرفتن پولم مجبوریم زیرمیزی بدیم میام تعداد سکه ها میره بالا همین دیگه زیرمیزی بعد بدی که به من پولت رو بگیر این میشه قدرت ثروت مشتری در حال از که من باهاش مواجه و فوق لاده قدرت ثروت مشتری بالاست یک عجب مشتریات تو عراک پتروشیمی اراج میشناسی؟ میشستی آره تاشون می دیگه <تصفح> یه روتوری رو ما براش رو تعمیر کردیم سه سال پیش دو ماه پیش ما زنگ گفتن روتورتون رو کجا بالانس کردید گفتیم <تصفح> مثلا فلانجا گفت پس ما روتورمون رو میفرستیم اونجا یه می چک کنن فرستادن اونجا که تعمیر کننده که ما قبلا فرستادیم برای تعمیر رو چک کنن ببینن اوکی ادا. فرسارن روتور اونجا اون تعمیر کنن، تعمیر کنند کنن، زیر پلی. بعد عملاً روتورشونو تحویل بگیرن، یارو من با شرکت که، گو همین الان به من پول میدید، رو میبرید. خود خب شرکت دولتی باشه این قضیه معنی نمیده. که بقولم مراد تو پول بدید، بعد بقولم مراد کالا رو به تحویل بدن. هیچی چی. یارو من روتورتون تو پول به من ندید، روتورتون تحویل نمیدم. آوا اینا رفتن بالا پایین چپ راست به هیچ جا دستشون نرسید گفتن چی کار کنه گفتن بریم سراغ مازندران آ ها بهتره بغذگان بچه‌มารی کشونن آرا کفله پیش رئیس تابه نون راحت لوحت اگه می‌خوام من با تو کار کنم بریم رو تو رو ترخیص بدم مشخص کردم حالا این کانسپت صحبت حالا این اصلا رفیق تو رو تو تو فرست تو معرفی کردم. بنا این نفر که تو معرفی کردی مشکل داشته خب نه بعد نفر ما معرفی میکردی حالا خودت هم برای پولش رو بده رو تو رو بکش بریم یعنی علکی 15 میلیم تا ما ربطیم هزینه کردیم چیزی کسا با ما ربطی هم نداره اینو بهش میگن قدرت چانزنی مشکل خب از اون طرف تعمی کننده ما هم برای ما تهدیده چرا تهدیده تعمی کننده برای ما؟ تعمی کنندگان ما دولتی نیست ولی چون تعداد تامین کنندگان ما بالا و حجم برون سپاری ما بالاست قدرت چانه‌زنی تامین کننده میره بالا. متوجه منظور من و این یه تهدیده. ما دو تا تهدید شناسایی کردیم. خب؟ پس ببینید توی اس اوتی ببخشید شما نقاط قوت، ظرف، فرصت و تهدید شناسایی کن. نقاط ضعف و قوت برمیگرده به درون سازمانه. درسته؟ نقاط فرصت فرصت‌ها و تهدیدات برمیگرده به محیط بیرونی, بیرونی سازمان. محیط بیرونی سازمان مثل چی می‌مونه؟ مثلا اون 11 عاملی که من خدمتتون گفتم. سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی، جغرافیایی، طبیعت شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، اوه، جنگل که نسمه که طبیعت شناسی. جامعه شناسی، تامین کننده مشتری، موانع ورود بازار، حجم رقابت و کالا و خدمات جایگزین. 11 عامل که شما نقاط قوت ضعف مشخص کردید. بعدا فرصت و تهدیدا مشخص کنید جان این از 4 نگاه بالا بزنید اونو توضیح میدم الان نمره‌ها فعلا فقط شما نقاط قوت ضعف و فرصت و تهدیدا مشخص کنید تو محیط داخلیت نقاط قوتت تو این ستون بنویس متوجهی نقاط ضعفتو تو این ستون بنویس تو محیط خارجی فرصتا تو این ستون از تو این جدول و تهدیداتم تو این جدول بده فقط لیست کن خب طالب بریم سوالام عمر گذاری جان شما سوالی این کنندگان که گفتی چون زیادن تحدیدن؟ چون ما حجم برون سپاریمون زیاده یعنی حجم... ما حج 60 درصد از فعالیتامونو تو سازمان برون سپاری میکنیم آره خب این مثال دیدیم آخ خوب این طبیعتا بودن شانزده تامین کننده رو میبره بالا حالا اگر ما نخواهیم برون سپاری کنیم نکته میخوام بگم بعد بریم به سمت استراتژی یکپارچگی عمودی رو به یعنی توسعه تجهیزات بدیم که وابستگیمون به تنگ کننده کم بشه این هم یه استراتژی ده سال ده هش سال اون مردم بلخواه یه استراتژی کنانی خب بریم سراغه وقتی شما لیست کردی دوستان دقت کنید این نقاط قوت شماست لیستش کردی دیگه ها اینا رو لیست کردی ستون بعدی وزنه وزنه یا ویت یعنی این عواملی که شما اینجا نوشید نقطه قوت متوجه چه درجه اهمیتی برای شما داره؟ تو سازمان شما چه درجه اهمیتی داره؟ وزنش داره که درصد قد بدید دیگه درسته که درست که کمتای پیش درصد بس کردیم دانش سازمانی رو من سی درصد دادم برند و پنجه درصد وفاداری پرسول رو پنج درصد سیستم فروش و بازاریابی رو پونزده درصد درست دادم درسته که مجموع این وزنا باید چند بشه؟ صحیح. یک بشه یا سرد بشه یک بشه خب؟ و همین داستان در رابطه با نقاط ضعف شما اتفاق میافته در رابطه با فرصتهای شما و در رابطه با تهدیدات شما یعنی بد دو بکنید خب؟ مرحله بعدی، بعد از وزدهی، حالا باید نمره بدید خب؟ نمره باید بدید نمره که شما برای نقاط قوت اتخاذ میکنی نقاط زد فرصت و تهدید بین یک تا چهاره اگر چهار باشه یعنی اون نقطه قوت تاثیر خیلی زیادی داره و اگه یک باشه یعنی تاثیر خیلی کمی تو سازمانتون داره که ما اینجا وز دادیم دانش سازمانی برند چهار وفاداری پرسنل دو متوجه سیستم فروش و بازاریابی سه خب؟ این امتیاز زب در وزن میشه و یه نمره نهایی به شما میده درسته؟ <تصفيق> یک و دو هم دو، یک دهم ده و چرا پنج سدوم و در نهایت تمامی نمارت نهایی با هم جمع میشه و یه نمره پایی میده به نام سه و هفتاد و پنج سدوم یعنی نقاط قوت ما سه و هفتاد و پنج سدوم از چهاره حالا <تصفيق> بیم سراغ نقاط زب نقاط ضعف مثل نقدینگی مثل سهامداری سیستم به کار تجهیزان. ما رو ووضدهی کردیم و حالا میخوایم امتیاز بش بدیم از یک تا چهار دقت کنید. تو نقاط ضعف اگه نقطه ضعفی تاثیر خیلی زیاد تو سازمان شما داره نمره پایین تر بهش میدید یعنی نمره یک به این معنی که اون نقطه ضعف خیلی داره تاثیر رو سازمانت میذاره. و اگه نمره چهار میدی یعنی تثیرش کمتر برعکس. خب ما مثلا نقدنگی خب خیلی تاثیر تو سازمان ما میذاره نمره یه؟ یک بهش به دادیم یا سیستم مکانیكس سیستم ساوندالتر تجهیزات، مثلا زیاد تاثیر حالا آنچنانی میذاره سه از چهار دادیم و در بحث میشه نمره نهایی نمره نهایی با هم جمع شد 1 و 8 تم نقاط شد یک و 8 از چهار نقاط قوتمون شد سه و 7500 از چهار. اوریج این دو عدد رو میگیریم 1 و 8 تم پنج یه نمره اینجا به شما میده به نام دو هفتاد و هفت این دو هفتاد و هفت وضعیت محیط داخلی سازمان شماست یعنی محیط داخلی سازمان شما دو هفتاد و هفت از چهاره یعنی چی؟ خب یک دو سه چهاره دیگه خب ما وضعیت نقطه از محیط داخلیمون وضعیت محیط داخلیمون اینجاست. یعنی یعنی متوسط رو به بالا تقریبا. خب متوسط رو به بالا. اگر اینجا میوپتادی می گفته محیط داخلمون خیلی خوبه. متوسط رو به بالا یعنی یه جورایی شاید نقاط قوتمو رو نقاط ضعف ضعفمو میچربه. این معنی رو میده. متوجه شدید؟ داستان چی شد ؟ حالا همین داستان بیا روی محیط خارجی روی محیط خارجیم درسته دقت کنید روی محیط خارجی رو فرصت ها دوباره وصل دادیم نمره دادیم رو فرصت ها از یک تا چهار نمره دیدیم هر چی به چهار بالا نزدیک دراججه این فرصت تثیر بیشتری رو سازمان داریم یعنی تاثیر بیشتری رو میذاره و در رابطه با تعیلات هم دوباره وصل دادیم تاتحیلات هم مثل نقاط ضعف. از یک تا چهار نمره میدیم هر چی به سمت یک نزدیک بشه این, این تهدید تاثیر بیشتری به میذاره مثلا الان مشتری رو من یک دادم یعنی خیلی داره این تهدید به من فشار میاره برای تامین کنندگان رو 3 دادم یعنی فشار زیادی شاید نه میاره ولی اونقدر مثل مشتری نیست متوجه بعد دوباره اینا با هم جمع میشه تهدیدات ما شد یک و 6 هم نمره نهاییش فرصتای ما شد سه و 3 هم خب Average می‌گیریم ازش شد دو چلو، پنج صدوم. یعنی محیط بیرونی ما چجوریه وضعیتش؟ اینجاست، این محیط بیرونی ما محیط بیرونی ما اون باز خود متوسط روبه باراست محیط بیرونی ما یعنی فرصت‌ها رو تهدیدات می‌چرمه نه اصطور متوسط بود و پایین از چهار پنج سدوم از نه دوونیم از چهار دوونیم از, از, از, از, از پنج نیست که. دو نیم از چهاره نه نه دو نیم از چهاره, از چهاره. از چهاره. خب؟ دوستار این شیتی که من توی فولدرتون گذاشتم خوشمنده یعنی شما اعداد وارد کنی خودش محاسبه براتون میکنه خب؟ و وضعیت محیط بیرونی و داخلی رو بر اساس این شیدی یا ما به هیچ میگیم تحلیل سوقات خب؟ برای سازمان شما میتونی مشخص کنید اوکی؟ سوالی هست؟ خب مطمئن شده قضیه را؟ اگه مطمئنش داشته الان بگید سوالی هست؟ هفته من فولدر رو به کی دادم؟ به کسی نداریم؟ باید نبود پس نبوده اوه میشه این چیزه مگه جد وقتی اون روز دیگه چه بود خوردن هم بعد کوچیک مشخص میشد که آره مشخص میشد که چیزه من درآمد شرکت میریم باشه دیگه که بعد استراتژی داشته باشه برای روند شرکت یه چیزی اینجوری بود از اول اینجوری بود که اینجا مثلا میرسید به اینجا صدا ببینید مثلا اینجا مثلا یه استراتژی بود اینجا یه استراتژی بود اینجا یه استراتژی بود دوم مثلا بالا و نوبه اینا بعد دیگه میرسید به اینجوری بود اینجوری بود اینا چه اشیایی تو هم بحث اول یعنی دوره این درمو میخوام به کار آقا من یک دو هفته آخر سالو رو خودتر آقای کلس استادی تموم شد تو کوری به بعدش به نوروز آتی میشه زمان زیره نیش من میگه این دو هفته رو بعدشه یه هفته از بیده دو هفته میشه هفته نومه یه نیست نه این چیزه این زمانش بیشتره 20 ساعتیه نه این یه افتر نه اصلا یه فقط کلس هایت سه جلسه دیگه مونده سه جلسه بعد میشه سه سه جلسهش میکنم یه و میشه سه هشتم میشه دیگه همین که لاستیکشون باشه دکتره رسیکه خبر بده امسال نصف سال تعطیلات خدا خدا وقتو چو ما چیزی ندیدیم تعطیل تعلیم چیزی نموند منم دیدم تعطیلی نمونید ها تعقیل ها چمورا دیدیشو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 سفت و بیستشتون چیه؟ اسفنسی آه آه این به چارشم بسویی دیگه تدیبی آره دیگه شما این جیز حساب کنید این کلی میشه بود چهار هفته، سه چهار هفته تدیبیه قشنگی نمیان که ما نمیان خب اه بیسونو هم که ما شما در شما بیا بیسونو هم هم هم های خواستیم باشی یه هفته قابل شما یه هفت قابل شما اگه دو صد میشه که نه اصلا نداریم یا تو راحت بعد تو مزد کلاس نه نه من میگم اگه داشته سال برای این یه چون یه هفته برای یه هفته هم کسی وقت آره. هفته تو نه نمی‌ذارن این ورسال برام، ها این ورسال نمی‌ذارن. بله با این ورسال برام الان نرو من نکردیم نکردم تا کلاسو که که شما اینه. شما بومی سازی کردین؟ جان شما بومی سازی کردین؟ آره چی؟ جهانی فکر کنید ایرانی عمل کنید. این مدیریت استراتژیک از ایده تا عمله. حالا اینو من بهتون دادم چون گفتید یه دفعه تو ذهنم اومد. من بحث مدیریت رو کتاب کردم. خب آره که این خلاصه ای از اون کتابه. یه پست از کتاب چاپیه؟ نه نه، کردم مدیریت استراتژیک از ایده تا عملو من کتاب کردم. گفتم مثلا چاپ زیر چاپه زیر چاپ میشه منتای مراتب توی بله بله تو سی دی هم هست البته پاورپوینت و اسلاید ها و حالا اکسل شیت یا مواردی که حالا کلا ما تو بحث مدل استراتژی از ایده تا عمل داره این یه حمینی که انی می‌کنم تو شوخی می‌کنم آره نه نمی‌دونم حالا الان خیلی هم شانس نه فهم مدل استراتژی نمی‌دونم هم که با شما قبلش داشتیم هفته پیش ماذرتون مدلیا نه, نه, نه اون مدلیا دراپ نه مدلیا استراتژیکه گفتم ساعت اون مدلیا هم, مدیلیت مدیلیت مدیلیت. مدیلیت هم نه نه نه این مدلیا استراتژیکه که این در حقیقت بحث خیلی خي... ببین من هفته پیش هم به شما گفتم مدلیا استراتژیک خیلی داستان داره خیلی به بهمون اومد خیلی عملیاتی و پرکتیکال در حقیقت تو این و تو کتابم گفتید خب یه کتاب دیگه هم زیر چاپه به نام جنرال استراتیجیست خب، اونم باز یه بحثی از مدیریت استراتیجی که حالا، این داشته باشید ولی فولدر هم روز بهتون میدم یه قسمتی از، پاورپوینت من تو این هست من پاورپوینتی که صحبت میکنیم خب؟ خیلی خب، بریم کنو چون گفتید، حالا من آخر وقت به نماینده کلاس فولدر رو میدم که بایتون شهر رو خیلی خوب دوستان محیط داخلی من عدد چند شد؟ محیط داخلی محیط داخلی عدد شد دو ممیز و افتاد خوب محیط خارجی چند شد؟ دو دو ممیزه چهل و پنج درسته؟ دو چهل و پنج این میشه خروجی سوات این میشه خروجی سوات ولی سوات یعنی تحمیل سوات فقط به شما دوتا عدد میده محیط خارجی، محیط داخلی چه عددی داره؟ محیط خارجی چه محیط داخلی چه عددی داره؟ این میشه سوات ولی کامل نیست ما آنو برای تدوین سند استراتژیک نیازمند ابزارهای دیگه هستیم. ابزار بعدی که تو بحث سوات بسیار بسیار مهمه ماتریس جی خو؟ خب؟ ماتریس جیه جی یا مکنسی مترکس یعنی اصلا ما این ماتریس رو باید بدونیم که از سوات بتونیم استفاده کنیم و اگر من سوات داشتون دوتا عدد چیزی چیز دیگه به شما نمیده که یعنی تکمیل کننده یه ماتریس مکنسیه ماتریس مکنسی چیست؟ ماتریس مکنسی یا ماتریس جی حالا چرا بهش میگن جی دوستان؟ چون این ماتریس چون این ماتریس برمیرده به شرکت جنرال الکتریک. خب؟ و بخواد رحمه بهش ماتریس جی او من من آره ماتریس جی که برمیگرده به شرکت جنرال الکتریک. این ماتریس چیه؟ این ماتریس یه ماتریس نه سلولیه خب؟ نکتا سلول داره اوکی؟ نکتا سلول داره و ماتریس جی میگه استراتیجی کلان شرکتی چند بود؟ دوازده دوازده تا بود؟ دوازده تا ماتریس جی میگه این دوازده تا رو یعنی ماتریس جی عملا اومده دوازده تا استراتژی کلان شرکتی رو به سه تا استراتژی خلاصه کرده به سه تا استراتژی خلاصه کرده این استراتژی ها چیه؟ و خیلی مهم مهمه استراتژی تهاجمی خب استراتژی های تداخلی استراتژی‌های ثبات استراتژی تهاجمی رو بهش رشتن میگن استراتژی تدافعی رو بهش کاهشم میگن استراتژی ثبات که اصلا صبات دیگه ما بحث روش ندریم خب متوجه هست حالا ببینید اینا چ؟ استراتژی تهاجمی یا استراتژی رشد استراتژی که سازمان اتخاذ میکنه خب تا عرض و طول سازمان بزرگ بشه خب با توجه به شرایط بازار سازمان بعض بعضی دنبال افزایش نیرو، افزایش زیرساخت، افزایش تا افزایش فعالیت ها هستن. اینو ما بهش میگیم استراتژی رشد. اگر سازمانی تعداد نیروشو میخواهد افزایش بدهد سرمایه گذاری میکنه روی زیرساخت، متوجه هستید؟ یا بعضن میخواد وارد بازارهای مختلف و متفاوت بشود اینو بهش میگن استراتژی‌های رشد یا تهاجمی، گروث استراتژی هم بهش میگن. گریفنتو. خب. استراتژی تدافعی یا کاهش. سازمان‌ها باغول بر اساس شرایط تصمیم می‌گیرن فعالیت‌های خودشونو کم کنند نیروهای خودشونو کم بکنن. متوجه هستی؟ زیرساخت خودشون رو کاهش بدن بازارهای خودشونو کاهش بدن فروششون رو کاهش بدن این استراتژی‌ها رو بهش می استراتژی استراتژی‌های تدافعی یا کاهش یا ری‌ترنجمنت اوکی؟ گای آن استراتژی سادمان‌ها استراتژی‌شون صباته یعنی این دنبال افزایش هر دنبال کاهش بخونم بعضیات موجود به حفظ فقط بکنن این ها بهشون استراتژی صبات گرفتید پوینت منو؟ حالا معظمتون سوال دارم یک پارچگی عمودی رو به عقب تو کدومی از این سه تا استراتژی می گنجه یک فارسی عمود عقب تهاجمی تهاجمی گشته یک پارچگی رو به جلو جلو گشته پشت نه نه تهاجمی تهاجمی معوجه خب استراتژی یک پارچگی افقی ثابت صواتا رشت رشت رشت ثبات هم می‌تونه باشه هم ثبات هم رشده رسوخ در بازار تهاجمیه توسعه بازار تهاجمی توسعه محصول تهاجم تنب و پذیری همگل همگل تهاجمیه غیر همگل، تهاجمی تنب و پذیری افقی صبات رشد هم البته روش میتونه باشه ها شما شرکت <تصفح> ها که در حال روش باشه میخواین یه مصول اضافه کنن که روششون افزایش بدن معذرتكم فروچشون افزایش بدن خب کاهش میاد تدافایی انحلال تدافعی برون سفاری تدفعی. تدافعی تدفعی. تدافعی گرفتید اونطور حالا یادداشت کن منه این ماتیس جیره رو نگفتم من اینجا بنویسم چون میگم تخته کوچیکه مجبورم بشم اینجوری بریم جن. دوازده تا استراتژی کلان شرکتی دقت کنید این ماتریسو استراتژی های جی ای درسته؟ آ استراتژی های کلان درسته؟ استراتژی های جی ای چی بودش؟ رشد، ثبات، کاهش، کاهش. آ؟ 12 استراتژی کلان شرکت رو به من بگید. یک پارچگی رو بگید. بعد دیگه حالا عقبشو می‌نیستم باشه؟ درباز. یک پارچگی جلو، افقی، جلو. جلو یک پارچگی افقی. رسوخ در بازار، رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه بازار، توسعه محصول توسعه مرسون. محصول. تنبوی تنوع پذیری همگین غیر همگین تنوع پذیری غیر همگین تنوع پذیری افقی تنوع پذیری افقی کوچکسازی کوچکسازی برون سفاری برون سپاری، انحراف درسته؟ برد. یک بارچگیه رو به عقب چی بود؟ ها جمعی جلو رشده روشت. افاقی هم رشد هم صباح که مشکلی هم شما ها؟ بله یک بارچگیه افاقی؟ هم رشد و ثبات هم رشد هم صبات رسوخ در بازار توسعه بازار توسعه محصول تنوع پذیر همگی غیر همگی پفوقی هم رشد هم صبات هم ثبات کوچک سازی کاهش فروش کاهش من فروش سفاری کار ندارم انحلال کاهش یه داستان سر اون سفاری دار اون سفاری چه استراتژی هم ثبات هم میتونه باشه میتونه ثبات باشه برون سپاری کاهش هست این به برون سازی میکنه آره تا هر ستا باشه اصلا هر تا هر چرا؟ یه دست اما اولا بذار برون سپاری هر ستاست میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ سازمان ها باید بحث برون سپاری رو داشته باشن در هر صورت چرا؟ چرا؟ مشتریاشون از دست نه بس مشتر. من میگم سازمان چه بزرگ چه کوچیک چه متوسط چه همه سازمان ها باید برون سپاری بکنن به خاطر کم کردن تجهیزات نه موجتا این یک پارچگی عمودی رو به اگر خوبه از طرف دیگه برون سپاری هم وجود داشته باشه چرا کنیم، برون سپاری برای سازمان ها مهمه چرا چون سازمانها باید فعالیت‌های غیر بحرانی خودشونو برون سپاری کنند و فعالیت‌های بحرانیشونو بروند سپاری نکنند. یعنی چی؟ ایران خودرو، امبا و اقسام تعمی رو داره، درسته؟ ولی موتورش هیچ وقت بروند سپاری نمیکنه. رنگ ماشینو برونسپاری سپاری نمیکنه. ترمز ماشینو برونسپاری سپاری نمیکنه. این توسط خود ایران خودرو یا شرکت‌هایی که خیلی وزو ایران خود را هستند داره انجام میشه مثلا موتور میدونید که محصولات ایران خود توسط میگا موتور زده میشه این میگا موتور قسمتی از ایران خود روز. خب خوب شرکت ها قسمت های بحرانی از محصولشون رو هیچ وقت بورسفاری نمکنه ولی غیر بحرانی ها باید بورسفاری کنن چرا باید بورسفاری کنن چرا چرا غیر بحرانی رو باید کنن آفرین، تمرکز تو از دست میدی. هزینه داره برات. هدک داره برات. من این مثال براتون بزنم. ما یه محصولی رو تولید میکنیم تو سازمانمون به نام کانتینر. خب؟ ابعاد اندازه این کانتینر سه برابر این اوتاره. یه محفظه فلزیه. اصلا متریالش استراکچرش مثل آهن، آهن هست. آهن آلاته. خب؟ جان کانتینر محفظ است ده. خب؟ که برای نگهداری تجهیزات نفتی ما اینو می سازیم. خب؟ رو میسازیم خب؟ منشق یادم چهار سال پنج سال پیش که من مدیرت شرکت بوده گرفتم میدهد که کانتینرها رو تو کارفان دارم تولید میکنن پد داستان داره یعنی یک فرآیند وحشتناک جوشکاری و رولینگ و ازا یک اصافتگاری داره خب؟ که من گفتم این چرا برو سپاری نمیکنید؟ کنید؟ شما نه سپار کرد چرا نمیشه؟ این آهنه شما بیدید بیرون من جوشتاری برای تو میکنم. تا دردت هم میخواد تانکرساز توی این مملکت ریخته خیلی جالبه، ما این کانتینرها رو اول مقاومه تو تو سیستم بود ولی الانی که من با شما دارم صحبت میکنم کل نقشهاش دقت کن تحلیل‌های مهندسی‌ش، تحلیل‌های استاتیتیکیش تو سازمان ما انجام میشه. خب، نقشه‌ها رو در میارن، تحلیل‌های استاتیکی می‌کنن، بعضن آپتیمایزش می‌کنن. خود رو انجام میدن، متریال رو می‌خرن، تحویل میدن به یه تانکرساز. این تانکرسازا رو نا توی وسط جاده، اصن کارگاه زیپ و جوشکار حرفه‌ایه. میدین؟ میسازن تحلیل و از زمانی که این کارو کردیم هم سرعت کارمون بالاتر رفته هم هزینه هامون اومده پایین‌تر هم اصلا کیفیت کارمون رفته بالا چون ما کارمون تانکر سازی نبوده اصلا ولی ما های مهندسی هیچ وقت برون سپاری بکنیم اطلاعات مهندسی رو نمی‌مون سپاری کنیم یعنی تانکر سازی نمیدونه این آپتیمایزیشن چجوری انجام میشه ما نقشه رو در میاریم بهش ما بساز تحویل بده این میشه فرآیند ولی برون‌سپاری بعد وجود داشته باشه باید نه تو همه ی زمینه ها مثلا ما مشاور حقوقی خودمون سفاریه. در استخدام ما نیست میدونی چه دارم میگم؟ در استخدام ما نیست سفاریه. وکه مدیر و بازاریابی نمیتونیم سپار بکنه مدیر و بازاریابی در استخدام ما باشه گرفتید پس کنی تو که چرا ما برون برونسپاری هم این همه شرکت‌ها شرکت ها باید فرایند برونسپاری رو داشته باشن ولی فعالیت های غیر بحرانی یا فرایند های غیر بحرانی رو برون سپاری بکنن آه, این ماتریس رو یادداشت داشت تو هیچ کتاب پیدا نمی کنیده. اینا توی اینترنت هم نیست یاد گرفت سه <تص> پاکان آواز داشت که از این دستیش کرد. شود جهت آن اکسی تو گروب بفرسی ما خوب میسه اکسیش آنه چیگه اینش شده باید باید نفت و گاز و پارس و کار میکنه و پارسیان گروه هلیم نید نه, نه, نه پترشیمی و و این نه چه, پل... چه پترشیمیه مثلا؟ عراق هست عراق و کار میکنه، پترشیمی کار میکنه اثریه؟ خدوم پترشیمی تو اثریه؟ جمع هست جم کار میکنیم اینا هم توی گروه من باز پ با جمع کار می‌کنیم با پتروشیمی پارس کار می‌کنیم با آریا سنسور کار میکنی, با عصبویه با پتروشیمی فچ کار می‌کنیم پتروشیمی موبیل کار می‌کنیم حالا همه شماها نف گاز پارس دیگه آقای عزیزی همه اینا رو ما باشون پروژه داریم ازشون شماها چی آه سیستم نظامیه آ سیستم شما لیست رو دارم. پروژه داریم ازشون عراق و پروژه داریم شبار تو ایسکریپتوری خوب برگریم جی اینو متوجه شدیم پس به این جی ای این جی میگه دوازده تا استراتژی کردار شرکت رو تو سطح تصریم باید تو سه استراتیجی تهاجمی، هدافایی و ثبات خوب ماریس چیی ارز کردم خدمت شما یک ماتریس نه سلولی خو خب؟ محیط داخلی ارزیابی محیط خارجی خو خب؟ ارزیابی محیط داخلی، ارزیابی محیط خارجی یه معلفه شه یعنی یه معلفش چی میشه دوستان استبلیو میشه متوجه ای یه معلفه ش اوتی میشه دقیق کنید ما نمره میدیم یک دو سه اینم چهار یک دو سه این اگر شرکتی وضعیتش یا اینجوری من بگم این سه تا سلول بالایی رو خب؟ بنویسید استراتژی تدافعی تدافعی تدافعی تدافعی این سه تا سلول رو بنویسید صبات صبات این هم میشه؟ روشت. تهاجمی تهاجمی و تهاجمی یا رشد بکنه شما خیلی خود. این میشه ماتریس سلیولی جی حالا داستانش چیه؟ داستانش چیه؟ شما بر اساس خروجی که از استبلی اوتی میگیرید خب این عددی که از استبلی میگیری. میگیرید بعد ببرید تو ماتریس جی ای بندازید. ببینیم وضعیت سازمان تو کدوم سلول قرار می‌گیره اگر وضعیت سازمان تو سه سلول اولیه قرار گرفت یعنی سلولای آبی قرار گرفت شما استراتژی سازمان باید تدافعی باشه یعنی کاهش باشه ریترنمنت باشه خب اگر توی سلول‌های قرمز قرار گرفت یعنی ثبات شما استراتژی سازمان باید ثبات باشه و اگر در سلول های مشکی قرار گرفت استراتژی سازمالت باید تهاجمی باشه یعنی گروز استراتژی. متوجه میشید برای چی میگم؟ حالا من اعضابی محیط داخلی و خارجی رو به دست آوردم دو هفتاده هفت دو چهل و پنج بروی تو کدوم سلول میفته؟ دو هفتاده هفت تقریبا میشه اینجا درسته؟ محیط داخلی دیگه؟ محیط خارجی 245 م تقریبا میشه اینجا وضعیت شما کجا میافته اینجا؟ آه. یعنی وضعیت چند کنید؟ صبات میفته یعنی استراتژی که بخوایم اتخاذ کنیم برای سازمان و برای صبات باشه نمیدیم به سمت رشد، نمیدیم به سمت کاج وضعیت موجوده حفظ کنیم منتوجه میشه داستانو؟ حالا گرفتی سوات به چه درد میخوره؟ خروجی سوات میشه ورودی برای جی شما در جی ای سازمان مشخص میکنین یعنی موقعیت سازمان رو مشخص این so دیگه این با... اه... چیزتر بشه دیگه و از اه... دیش حالت دیگه. یعنی توضیحات بیشتر داره داخلش که مثلا حالا صوبات... چه... چه نوع صحباتی داشته باشه یعنی چه داشته باشه یعنی تو مرکز افتاد دو حالت داره دیگه مثلا چند حالت داره؟ <متصف> راه یا برداشت محصول الان برای شما افتاده تو حفظ و نگهداری وضع موجود. سمات دیگه اونم به یه شکل دیگه نوشته شده. آها یعنی فرقی با هم نه. نه نه نه نه نه. هم نهارد. نه. نه نه دوستان اگه تو سه تا سلول اول بیفته استراتژی تو چیه تدافعی که بهش رها کردن یا برداشت محصولم میگن. ریترنچمنت هم میگن استراتژی تدافعی هم بهش میگن. خب دقت کنید اینجا که بیفته یعنی چی تو این سناریو؟ خیلی وضع خراب. یعنی وضع خرابه. یعنی نقاط ضعف تو قواعتت می‌چربه. تهدیداتمو فرصت‌ها می‌چربه. این یعنی وضعیت خیلی افتزاست حالا اگر مثلا بیافته اینجا تو این سوباط، اینجا بیفته چه معنی میده؟ محیط خارجیت خوبه، فرصت‌های خیلی خوبی وجود داره. ولی تو یه سری نقاط ضعف داری که بعد مرتفعش یهو واسه وضعیت نقطه اینجا تو خوبی در اون سازمانت خوبه نقاط قوت خیلی خوبی داری ولی خوب تهدیدات زیادی تو محیط بیرونی وجود داره پس باید وضعیتو مورد نگه داری اگر نقطه اینجا یعنی هم شما خوبید نقاط قوت و می میشوه هم محیط بیرون هم کشش داره فرصتا رو تهدیدات میشوه این تحلیل ماتریس جی ایه. یا ماتریس مکنسینگ هم بهش میگن راه رو تقاطع بیفته چیکار میکنی نه، اول اونیا چی؟ چی پیش میاد؟ می گیر می دی. آ دادا اون میترش صدامم شاد سه. آ گیر می زی. نمیมา بابا. آ بخاطر این نمیخواید. من زبانی که مالزی تدریس می بهترین کلاس من، کلاسی بود که مالایا سر کلاس می داد. مالزیایی. او چطور؟ من توپ یعنی اینا فوق قلود فالوور دیگه میدونی؟ فالوور های خیلی خوبی هستن اولا سوال نکنن اصلا سوال نمیکنم. و اگرم هم درستی رو میگن می حتما مشکل از منه که من نمیفهمم. فهمن خب ما تحجیب سوال بکننم مثلا من نداشتم مثلا خیلی رندوم. بعد نکه سوال هم نمی بعد یه جوی هم سر کلاس برخورد میکنن که آدم مثلا درمان دیموتیویت هم میشه، موتیویت هم یه مینی بیستن لاب داشت میکرم آره ما هم براییم در تنه کلاس من، آره بدونی واقعیتیه من زمانی که تدریس میکردم این رد رو به سوال شما ندارم من داشتم نگفتم آره، یاله یه خاطله افتادم بری خوبه بری خب، من با ملیت های مختلف سر کلاس من بود ایرانی هم سر کلاس من بود خب؟ توی نقطه زمانی که اصلا تعدادشونم زیاد شد مثلا من سر کلاس هم، کلاس هم. چ... چینی داشتم، مالدیوی داشتم چمینا آفریقایی داشتم، وسترن داشتم خب؟ وسترن آره من دانش انگلیسی، آمریکایی، استرالیایی ما خیلی داشتیم دانشجو شده متاسفانه، بین تمام دانشجوها هم بدتری رو برمینام بودم چرا ساده ها نمیدونم در درست اصلا نمیخوندن و این تو زبان آمیانه ما،, آم، آمیان ما میگه ایرانی ها باهوشن در مقایسه با ملیت دیگه اصلا اینجور نبودن. من باهوشترین ملیت در میگشت به مالدیف یعنی تقریب تو اسطوریه که من داشتم دارن سر مالدیوی ها خیلی باهوش بسیار, بسیار بسیار بسیار باهوش بودن. و جالب اینه که معمولت ایرانی ها سر کلاس من فعل شدن خب؟ فعل. اصلا من ایرانی بشتم که چیز شد یعنی سه بار از زیر دست من فعل شد ایرانی اینجوری من درست نمی خوندن برکه. من و متاسفانه با ما خیلی درش بودن ولی نمیتونستیم خارج از استاندارد عمل بکانه این هم اگر بلنک نوشته برقش از این نمره بهش بدیم خلاصه آره ولی مالزی لیزیایه خوب است ملوانه خود تو اینجا متوجهی حالا س... حالا یک چیزی که من می‌خوام اشاره کنم که شما تا وسط سالته می‌گیرید جی میگه با سه تا استراتژی داریم تهاجمی تدافعی ثبات یه استراتژی چهارم هم هست یادداشت کنید به نام استراتژی های ترکیبی ترکیبی از ایناست متوجه یهوقت سازمان شرایطی داره که هم استراتژی ثباتو داره هم رشدو داره متوجه مثلا ثباتو تو توسعه تجهیزات داره ولی رشدو مثلا تو تعداد نیروی انسانی داره. داره یا جای دیگه داره بواسطه این ما کامبینیشن استراتژی حالا ممکنه الان شما بعد از سوات آنالیزیس وضعیت مثلا بیفته اینجا روی خط بیفته سالی که شما کردید چیکار می‌کنیم اینجا بیفته؟ اگه روی خط بیفته چیکار می‌کنیم؟ اما ثبات بعد dele چه هم تدافعی. یعنی نگرش ثبات تدافعی سازمان بعد داشته باشه. یک سری از فرآیندات باید حبس وضعیت موجود کنی یک سری از باید بریم به سمت کاهش. حالا این به تشخیص مدیرها یا ممکنه مثلا فرض کن شما اینجا بیفتی روی خط می‌افتید دقیقا ببینید چی دارم میگم؟ یعنی نمره یه، محیط داخلی دو بشه دقیق دو بشه ها؟ نه دوی دهم ده یا یک و دهم دقیق دو بشه مثلا محیط خارجیت بیاد مثلا بین سه تا چهار مثلا یا عدد یر که اونجا باید ترکیبی از این استفاده کنی اینجا میافتی ثباط و تهاجمی بد بشه بعضی از فراینداتا بعد تهاجمی بره جلو ممکن مثلا عجکرم زیرساختتو تو توسعه بدی ولی تعداد نیروی انسانی تا حفظ کنی، نگه داری دادا نیروی انسانی تفصیحش بدهی پس ستا همیشون چهار تا درست سه بعدا میگیم ما همیشه هر تعدادی که میگیم یه دونه اضافه ترم میسانیم که جواب اینجو سوالاتو بتریم <laughs> نهش ولی نیاز داشت کن کامبینشن استراتیجی باز توی هیچ کتاب این استراتیجی ترکیبی هم... باز ترکیب همون جز همون میشه تواجب تدافای سوا ترکیبی نمیشه تواجام این تلافاییست سه بر یک سه بر این چیزی که استاندارد شده یا خود؟ بودم. نه بابا من اگه من از جیبم به در استاندارد <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> ایرانی ها مبتکرن <مبتكلم> <تصح> <تصح> نه نه هستن ایرانی ها مثلا من میبینم مثلا میگن آمیخته بازاریابی من دیدم 8 تا پی 15 تا پی 25 تا پی بعد اومد تو مثلا تا پی بعد 3 تا 7, پی. 7 تا پی سرویس مارکتینگ چهار تا برای کت آقا جواب وضعیه آسانا بله سوالی هست خب، پس ببینید ما SWOT انجام میدیم بعد از سات میریم سراغ ماتریس جی ای یا ماتریس مکنسي که وضعیت سازمان مشخص کنیم ببینیم بره به سمت رشد بره به سمت ثبات تدفایه باشیم یا چی مرحله بعدی ماتریس توزه ماتریس توس شما اوکی دیگه؟ آه اوکی آه. ماتریس توزه. یه جوری میشد <تصفيق> کلاس که لاس سیگار رو شامی کردی که همه نیومدیو آره و یه است هم نه نه نه نه نه چی؟ آبو جا دانشجویی بیاره آبو جا رفته آبو جا رفته چه من توی دستم یه روز گفتش که میرد فرم مثلا بیارنش با بیای کتاب کنه دانشگاه خب. بعد که رفتم اونجا پیشه گفتش آبو جا گفتم که مگه گفتی آبو جا دانشجوییه آه، دانش جویی بگذاری ملایم و سبا سبا کنه و اصلا مخصوص دانشگاه نه، یه سنگین شما بیار او خورت باید از از سوال میکنه نه، میبینه که جواب سوالاتو توب میده اینکه نقشم ماتریس جی رو را میکنه فکر کنیم چهاتش میشه دهت خوب کنه خدمت شما هست که خب، این ماتریس مکنسی یا ماتریس جی ای به این ماتریس توز مابسی توز یعنی چی؟ دوستان! خب شما اگه مابسی توز رو خوندی بدون؟ والا من اینو خوندم توی اینترنت که تو توز اینه که اول تحبیل و فرصت ها رو آزمایش میکنیم بعد نقطه ضعفا و نقطه های بلغا در آخر نه. خب، ادامه. میدونی؟ بعد این توز اس او شناسایی استراتژی برای پیشرفته شناسایی استراتژی برای قلبه نقطه ضف است شناسایی استراتژی برای جلودی از سح یا شناسایی استراتژی برای حداقل کردن نقطه زنف ها برای از س د خب okay. بخشش اینکه من گفتم و فرصت الان آزمایش باشه بعد نقطه زبان نقاط به قابل تو تحریقات هاروارد داشتشته شده mm. okay. خب او؟ okay. ازباده. حالا من یه زبان رو بگم ماتریس توز ماتریسی برای تدوین استراتوژی کلان کنان شرکتی که کمک میگیره از استرگی اوتی من مینویسم ماتریس توز ماتریسی <تصفيق> <تصفيق> که برای تدوین استراتژیهای های کلان شرکتی کلان شرکتی به کار می و از استبلی اوتی و جی ورودی می گیرد. متوجه این؟ <تصفيق> یه ماتریس برای تحلیل استراتیجی های کردن شرکتی که از استرگی OT و GE ورودی میگیره حالا داستان چیه؟ بخوریم اینو ماتریس توس برای تحمیزی موضوعات استراتژی بر اساس تحلیل استفاده میشه پس ماتریس توز برای برنامه ریزی که از تحلیل سعاد استفاده میشه خب؟ یک یعنی انتخاب استراتژیک که بایستی برای کمک به موضوعات استراتژی که بیشترین تحصیل یا فاکتورهای استراتژی کلیک را بر شرکت دارد انجام پذیرد. خب دقت کنید. در ماتریس توز ما چهار اپروچ داریم یا چهار متد داریم SO, ST, WO, WT بهمیم داستان این ها چیه SO, ST, W WT خب ماریز توز اس SO او یعنی چی برنامه ریزی استراتژیکی که ننویسید گوش به برنامه ریزی استراتژیکی که از نقاط قوت استفاده میکنه تا بتونه به فرصت ها حمله کنه به این فرصت ها با استفاده از توانایی ها. توضیح میدم بعددم بازش میکنم براتون ی برنامه ریزی استراتژیکی که از نقاط قوت استفاده می‌کنه به تهدیدات حمله میکنه strength to ترندز ها WO استراتژیکی است که از نقاط ضعف در سازمان استفاده میکنه تا به فرصت‌ها نبرد فرصتانا میکنه و برنامه ریزی استراتژیکی است که از نقاط ضعف در سازمان استفاده میکنه تا بتونه به تحدیدات حمله کنه مثال بزنیم فرض کن یک سازمان تو اسکو یه سازمانی نقطه‌ی نقطه قوتش خوب برنده درسته؟ فرصتی که داره حجم رقابت. یعنی نق... بر اساس سوات نقطه قوتش برنده فرصتش حجم رقابت حجم رقابت استراتژیک چجوری میشه؟ ما داریم این SO برنامه ریزی است که از نقطه قوت استفاده میکنه تا بتونه به فرصت حمله بکنه یا شرکتی نقطه قوتش برنده حجم رقابتش فرصت. چه برنامه ای رو با بنیمیسیم تو سازمان شما به من کمک کنید چه برنامه ای رو تو سازمان بنیمسیم که از این نقطه قوت استفاده کنید و به این فرصت حمله کنید قبلیم. با اون روی میتونه باشی دیگه همون کاری نبود که سونی با اریکسون کرد رف باش جان نه, نه. که به این شکل مثلا که باعثه از نام برند معروف خودش رفت اون تکنولوژی اون رو در اختیار گرفت ها تکنولوژی اریکسون رو ها باشد برند سونی اریکسون که در از سونی غالب بود به, به با بازار. همین توسه موزر از او تو این حوزه میتونه توسه <تصفيق> موزر دقت موزر چی شد یعنی من دارم از تحلیل سوات استفاده می برنامزی استراتژیک می نیمسن. یا فرض کن یه شرکتی نقطه قوتش نقطه قوتش وفاداری پرسونله نقطه ضعفش مثلا تهدیدی تحدیدی که داره قدرت بالای مشتریان این یه تهدیده آره دیگه قدرت چان رزنیشون، استی میتونه باشه تو این؟ استی که ما از نقاط قوت استفاده میکنیم تا بتونیم به تهدیدات حمله کنی، به تحدیل نوترالاژ کنیم چه برنامه منجبه دوستم تحت همهار استی؟ بگید شما، شما بگید، بگید، بگید وفاداریه پرسانل، قدرت ماله مشتری. بریم رسوخ در بازار سخت رو بگیرد پرسانل ببین، قدرت چار هموندیه رو به درگر. میتونه باشه ببین یه بحثی که اینجا وجود داره من خواهشی که دارم اینجا خود ذهندی دیگه فرمول نیست من اینجا نیست که میگم سواد سخته خب؟ اینجا دیگه فرمول نیست اینجا دیگه تسلط شما رو کسب و کاره یعنی برای کسب و کار مسلط باشی آقا من وفاداری پرسنل دارم قدرت چانزنی مشتری هم بالاست بله، رو در بازار میتونه باشه یک پارچگی عمودی روبه زیر رو بیا تقویت کنیم شاید کوچک سازی شاید به کوچک سازی هم بشه ولی آن چیزی که حالا مثلا من مد نظرمه تو این مثلا یک پارچگیه یک پارچه سازی عمودی روبه عقده یعنی زیر رو بیا تقویت بکنید که برند قوی بشه اون وقت در مقابل مشتری قدرت چار زنید میره بالا گرفتی چون وفادانی پرسونل هم داری زیر ساختت رو تقفیت کنی دانشت رو اینفرو بکنی چون قدرت رزنی در بابانه مشتری برو بالا دیگه دبید استراتیجیک یه کلاسی رو برگزار میکنم یه سمیناری رو به نام جودو. ج... جدو استراتیجی یا جدو استراتیجی استراتژی های جدوی مدیریت استراتژیک مثل پشتی میمونه مثل بازی جدو میمونه خب همیشه شما این فرمول تو باشه. و که مشتری، مواجه تو وسط از تو کابیتره، خودت هم از خودت دیگه واسه این چه جلو؟ مگه، مگه ببینیم زیست. آخه هم مشتری قویه خودت هم خودت قوی و تو تو به این قضیه برخورد خورد میکنی. یا مثلا حجم رقابت فرصته، خب یعنی چی؟ یعنی طرفی که تو داری باش کشتی میگیری یه جایش میلنگه میشنگه؟ خب، پتدش هم نکنی. این یعنی استراتژی تهاجمی بری جلو. مدیریت استراتژیک دقیقا مثل استراتژی جدایی میمونه. مثل جدوس مثل بازی جلو میمونه. حالا میتونید تو اینترنت سرچ کنی استراتژی جدایی رو بخونید. این توئیتر اینترنت هست. جودس استراتژیست یا استراتژی جدایی خب فکر نه. باشه نازک پس. خب. <تصفيق> دابلی و او و نقطه ضعف شما نقدینگیه. خب، یه نقطه ضعف تو سازمان به نام نقدینگی. یه فرصت داری به نام کشش بازار. WO استراتژی هایی است که شما از نقطه ضعف استفاده میکنی. تا بتونیم به فرصت تامله کنه. آقا نقطه ضعف در بنوع نفتنگی یه فرصت هم داریم وان وان داره که چه بازار چیکار می‌کنی؟ چیکار می‌کنی؟ تو بازار ها وام میگی وام میگیری. یک پاشی وام میگیری که تجهیزات خریداری کنه حالا بعضا تو سه فروش بده. دقیقاً دبلیو اوت گرفتن وام. وام این دبلیو اوت و فنجون شده نمیشه؟ میتونه آره من مثال رو همه چی به تحضیل بیزینس شما داره. بله جون شدن هم میتونه باشه یک پارچه سازی اوفوپی بی. یعنی بیا از آره کسی آره، که تحمیل منابع کنه تا به بازار حمله و بلندت رو تقویت کنه بریم سید من پاکن کنم حالا سوات آیا ابراهیمی لذت یا نه؟ خیلی شما چیزی بگه خوب نیست. تو دفترشون تموم شد دفتر. عکس بگیره تو اگه نمی نمی بگیره دیگه تو رو قرآن گیره نه نه نه با نمیده کتاب نمیده شما فرض کنید نقطه زرفی شما داری به نام کچیزات درسته؟ بله تهدیدی داری به نام حجم رفا برد چی کار میکنیم؟ صدی برد درست میگه. من در اونگاه چی بزنم میتونیم <تصفيق> آه بگو حالا چی کار میکنیم؟ این میشه توضا بگی من یه مشکلی دارم یه مشکلم اون برد چی کار برد بکنم؟ پروست پروست نه، بابا. نه، فروش سفاری درست. یکی از دامینج های سفاریه. دیگه من من <تصفالی> به مران داشتم دیگه. هر چیزا من SRM کردم. SRM ار مدیریت ارتباط با تامین کننده‌ها. یک واحد رو رمزی کردم، سافتوار. خب؟ هر شب کنندگان زیاد، چهار تا آدم غلطا گذاشتم اونجا. متوجه و پیگیر رو سمج. یعنی دوده مانی ترمیم کنندگان اینا به باب دادن یعنی قطعه که ما برون سپاره میکنم مدام زن میزنن، وارد چون زنی میشن، دخفیف میگیرن بعد قطعه ازش رو تحویل میگیرن، حالا میخوام پول پرداخت کنم پیچاره میکنن طرف ها نه چطور میگم، این دبلیتی ماست. این دبلیتی هست مستاد یه باشگه اول میتونه باشه چون تجهیزاتت مشکل داره آله یک پارچیزگی عمودی رو به عقب میتونه باشه که تو سه تجهیزات بده توضا متوجه شده چی شد؟ آره ولی این داستانی یک پارچیزگی این رو اره بکنم بر بر بره شما داشته تو رویه ها ندم میزدی؟ <تصحب> این یک ای خدا ازیاد داره خیلی برگاه سهر خواجی کشم خب دو سای اطول به رو 키یم هایی受 هربای جلسه فایل ایچه خلق شده خب، ماتریس توز، دقت کنید این فرصت هایی که تو سواد نوشیده اینجا لیست می کنید خب تعدیدهایی هم که تو سواد نوشیده اینجا لیست می کنید متوجه نقاط قوتی که تو سواد دارید و اینجا لیست می کنید نقاط ظرفتونم اینجا لیست می و بعد در اساس این فرصت تهدید نقاط قو و نقاط ضبوی اس او، W او ی و WبلT تصمیم میگیریم. حالا دقت کنید جویی که خیلی زیاد زیادش شد د می آ آها که من گفتم چهار تا باید بنویسید به خاطر. اینه. شما اگه میمد 20 تا نقطه قو بعد بنویسید. ویستا نقطه ضعف بنویس سی تا فرصت در توی ماتریس توز بیچاره میشه متناقض میشه اصلا داستان میخوری یه نفر باید استقام کنیم بشینی ماتریس رو برای کر کنیم توز دیگه این ها دیگه جان؟ because because man... <صح> آره، خب دوستان من نقاط ضعف و قبط فرصت تعداده که اینجا نوشتم میرم تو ماتریس توز متوجه ای؟ تو ماتریس توز تا نقطه قوت بود. هران چیزی که در شاه اونجا لیست می‌کنه. تا بود مثلا خودت درش کنم ببینید. حالا ببینید. خب دانش سازمانی، برند وفاداری، سیستم فروش. خب میگم این شی توش منده. مثلا تو سوءات وارد می‌کنی، تو توز وارد میشه. خب نقاط ضعفت، نقدنگی، سیستم مکانیک سیستم صوامدری، تجهیزات. درسته؟ بیا پایین. تحریم حجم رقابت، کالا خدمات جایگزین، مبانع ورود به بازار. درسته؟ باید. و تهدیدات مشتریان تأمین کنندگان. با. فقط وارد میکنه. هر آن چیزی که در سواد داری رو اینجا ترانسفرم میکنه. خب، حالا دقت کن. قسمت وسط ما، وسط این ماتریسه S O درسته؟ W او S T با داملیو تی چند اس داری شما چهار تا اس داری اس یک اس دو اس سه و اس چهار چند تا, دابلی... تا او داری چهار تا چهار تا درسته؟ بله. حالا اگه بخواید اس او رو بنویسیم چندتا اس او میتونیم بنویسیم؟ دو شونزده. شونزده تا. آره، 16 تا اس او ما میتونیم یعنی 16 تا برنامه استراتژیک می میتونیم بنویسیم. ولی لزومی 16 تا بنویسید تا. میگم تا 16 تا شما برنامه استراتژیک برای اس او میتونید بنویسید. متوجه شدید؟ ها؟ نه. فری اس کی او چهار تا او داشتید تا اس او یعنی نقاط تو استفاده کنی به فرصت حمله کنی 16 تا اس تا 16 تا اس او میتونی بنویسی تا 16 تا می از یک تا شونزده ولی نیا هر سر 16 تا رو بدم می‌تونی بگیری یه تا بنی. تا 16 تا برنامه استراتژیک می‌کنی که در شما تا چهار تا داریم. او داریم. او داریم. چهار تا چهار 1 یه برنامه میتونه باشه اس 1 o 2 یه برنامه میتونه باشه اس 1 o 3 یه برنامه اس 1 o 4 یه برنامه ای او شد استو 2 <تصفيق> <دو او> <تصفيق> خودمشه حالا بعد بنویسی مسئله این چیه؟ آ حالا من صحبت می‌کنم. نکته بعدی. 4 تا 4 تا. تا درسته؟ حالا می‌خوام دبليو رو دیگه. چندتا فرصت داری؟ 4 تا. دبليو تا چندتا تا باشه؟ 16 تا. خب، می‌ریم سراغ استی چندتا تا چهارتا، داشی؟ تی T داری؟ دو تا. تا 8 تا. تا هشتا از 0 تا 80 یعنی اصلا ننویسی میتونی تا 8 تا ماتریس تا اینقدر به تو فضا میده جا میده خب دبلیو t چند تا دبلیو داشتید 4 تا 4 تا تی تا 8 تا میتونی بنویسی حالا برات توضیح میدم اینا چند به خودتون الان صحبت می‌کنم باهات یه دو سدیم استراتکا حالا اگر بری یه دفعه اس تو دقت حالا کن چرا من میگم اس چهار تا هده دقیق دو تا اگر بیست تا S و بیست او تو سازمان بریسید چیز میشودم؟ چهار ست تا به دو بیشتر نه